خانم‌ها آقایون دختر خانم‌ها آقایان دقت بفرمایید از اونجا که انتخابات مجلس خبرگان نزدیکه و ظاهرا عده نفوذی هم قرار وارد مجلس خبرگان بشن اینه که جناب آیت الله عاملی لاریجانی در جایگاه ریاست قوه قضاییه احساس خطر کردن و در یک اقدام پیشگیرانه یک تنه قانون اساسی رو تغییر دادن و اعلام کردن که خبرگان اصلا حقی ندارن که بخوا نعوذ بالله نظارتی بر رهبری و دم و داشته باشند. گوش بدیم الان ببینیم چرا میخندین یعنی آقا دم و دستگاه رهبری که من میگم منظورم اون سازمان ها و نحات های زیر مجموعه شه دیبا هر چیزی که ما شخی نمی کنیم که دم و دستگاه رهبری یه چیز مشخصیه نخند فایل لاری رو بذار گاهی دیده میشه که یه سخنهای بیپایه گفته میشه نسبت به نظارت بررهبری و اخیران من دیدم که بحث نظارت بر نهادهای زیر مجموعه رهبری و منصوبین رهبری او را اضافه کردن بله. واقعیت این هست که اینها ها یک آرزوهاییست که داره میکنن و ربطی به قانون اساسی نداره بله. این ها توقعات خودشون دارن میخوان توسعه بدن یک رو و این نحو فضا سازی های نادرست و منطقی با انتوجیه نداره <تص>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 عیزه بدیم عیزه بدیم یه لحظه اصل 111 اینجاست اینا بذارین الان اینجا جلومه دیگه براتون بخونم آقا اینو ما تو مدرسه هم خوندیم دیگه یعنی چیش چرا یه چیزی میگه اصلا بر خودش اصل 111 همه قانون اساسی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 در قانون اساسی ما نداریم نظارت بر رهبری در قانون اساسی ما نداریم نظارت بر رهبری خلاص آقای لاریجانی از بیخ کلن منکر اصل 111 قانون اساسی شدن و اگه یه دو زیادی بخوان روی این اصل ما بدن و اینا دیگه هیچ بعید نیست اعلام بشه که این اصل از اول نفوذی بوده و مثلا آمریکا و اسرائیل و اینا با دسیسه لای بقیه اصول قانون اساسی اومدن چپوندن گزارش دلش اینه که دیگه به فرمایش آقای عاملی لاریجانی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 اینجوری بود رو